گرم از دست برخی زد که با دلدار بنشینم زجام وصل می مینوشم زباغ عشقل چینم شراب تلخ صوفی سوز بنیادم بخواهد بود لبم بر لبنه ساقی و بستان جان شیرینم مگر دیوانه خواهم شد در این سودا که شب تا روز سخن با ماه میگویم پری در خواه میبینم لبد شکر به مستان داد و چشمت میبه میخاران منم که از غایت هرمان نبا آنم نبا اینم چه هر خاکی که باداور بر فیضی برد از این آمد زهال بنده یاد آور که خدمتگار دیرینم نا هر کو نقش نزمی ز کلامش دلپذیر افتد تذر طرف من گیرم که چالاک است شاهینم اگر باور نمی نمی‌داری رو از صورتگر چین فوس که مانی نسخه می‌خاود سنوک کلک مشکینم وفاداری و حق‌گویی نکار هر کسی باوشت غلام اوصف سانی جلال الحق و دینم روموز مستی و رندی زمن بشنونه از واعز که با جام و قده هر دم ندیم ماه و پربینم